بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف انبیائه و سید المرسلین و آله و صحبیه اجمعین اما بعد اصل پنجم من خوندم اصل پنجم بحث اولیای خدا من چطور بین اولیای خدا و اولیای شیطان فرق بذاریم و بشناسیم اولیای شیطان را از خدا همونطور که خداوند وحی میکنه به پیغمبرانش شیاطین هم وحی میکنن بر اولیای خودشون این شیاطین لا یوحون الی اولیاءهم شیاطین هم وحی می شیاطین هم برای خودشون اولیاد دارم وقتی که با ما مشاهده رحم الله فتوی از آیم بیک ای از آیم بیفکنم ای لیت کشته نکنم میرسه که نیکه اگر کسی بر آبراهم بر والیاتش ما شفیم که خیر. از کجا منو که ولی شیطان نباشه در هوا پرواز میخواد بکنه یا روی آب راه بره کجا منو که اولیای شیطان نباشه ساحر و جادوگر نباشه <تصفيق> یه که اینجا اصل پنجم میخواد اینو بیان بکنه ما دجالین و کذابین و مشعوذین و جادوگران و تعویذنیسا را از علمای ربانی متقی خدا تر تشخیص بدید فریب جادو و جن رو نخورید فریب اون نمیدونم کسانی که خنجر رو برمیدارن تو شکمشون و بخال معروف تو زبانشون و تو دهنشون میذارن نخوریم اون کسی که شیشه و چاقو میخوره فریبشو نخوریم به فریب جادو جنبل ها رو نخوریم معجزه یه طرف کرامات یه طرف جادو جنبل یه طرف دیگه جادو جنبل قدرت خدا داده و تبعوا متبع الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن کفر و يعلمون الناس السحر سحر جادو هاروت وماروت خداوندت از ملائکه و فرستاد برای ابتلا و امتحان بندگانش این کرامات شیطان نه کرامات خداون اینو باید تشخیص بدین کسانی که دشمن دینن از ساحرین و مشعبزین کسانی که تعویذ می‌نویسن دام می‌نویسن اینا مشعبزن اینا نفاق دارن اینا دجالن اینا با جن دارن اون کسی که بهت میگه بوز بیار براز کوبه برنم سر بزنم یا برم نمیدونم یک بزی بیار سر براز بزنم فلان بکنم میخواد قربانی میکنه برای جن که جن تابهش بشه حاجتش رو بکنه این میخواد دین بگیره این شخص دشمن خداست دشمن دین خداست این اصل پنجومی که اینجا داره بیان میکنه یک کفایت در فرق بین اولیای خدا و اولیای غیر خدا اولیای شیطان کافی <تصفيق> این آیاتی که بارد شده در عمران العمران قل کنتم تحبون الله فالتبعونی نگاه بکنین راه روش اون شهر پیانبر یا اگر راه روشش راه روش پیانبر صلی اللہ علیہ وسلم بس بدون که خدا را دوست داره سنت میخونه قیام تهجد اگر دیدید شخص پایبند و دیندار و خدا تلسیه اگر کرامتی دیدید بدونی خدا تکریمش کرده یک مثله فقط در بحث کرامات من بگم هر که ایجا جاش جو نیست ابن تیمیه در کتاب واسطی در آخر کتابش مره بحث کرامات کرامات در زمان صحابه کم بود شما دیدید شنیدید فلان صحابی روی آب راه بره، پرواز بکنه، فلان بکنه، نمیدونم اینجوری چیزای شنیدید این چیزی که پیش خودم میشنیم فلانی جدش اینطوری بوده و نمیدونم این نمیدونم فلان عالم اینطوری کرده، اونجوری شده، فلان سید اینطوری شده، رفت مکه و توب و و برگشته، این چیزی شما از صحابهش شنیدید نه نیست، صحابه نیاز داشتن. چرا؟ چون راسخون بودن در چون یقین داشتن. اون کسی که یقین به خدا نیاز نداره خداوند بیا ایمانش و تا تقویت ایمان خداون به اون ممنش عزت میده با اون کرامت که دلش محکم بشه پایبند بشه از کید شیطان و دشمن نجاتش میده صحابه نیاز نداشتن حتی که برای بعض از اصحاب رخ داد مثل اون چیزی که برای اون صحابی به قدوی مسیر تنها بود با اصرش اصرش مرد بعد خداون دعا کرد و خداوند اصرش زنده کرد خب خداون تکریمش کرد نجاتش ولی خب مردم دیدن شنیدن آوازه شفته بله فلانی اینطوریه برید متبرکش بشید دست بگشید بدشید دعا براتون بنویسه این شید نبود یا اون چیزی که برای ابو مسلم خولانی پیش اومد در مقابل استاد انسی در یمن آتشی برپا که اونو در آتش اندوه نجات یا در تابعین کرامات بیشتر داریم تا در صحابه چرا چون نیاز تابعین که تازه مسلمان بودن اون نبوت و امور جزات نبوت رو ندیده بودن نیاز اون بیشتر بود از صحابه نمیگیرید میگه چون نیازشون بیشتر بود خداوند اون کرامات رو بهشون میداد که قوت قلبی داشته باشن اعتمادشون به خدا بیشتر بشه توکلشون بیشتر بشه ولی صحابه دیگه نیاز نداشتن چون معجزات رسول الله صلی الله علیه و آله دیگه بودن، چون به یقین بودن پس هرچی جامعه مکتلاتر بشه از خدا دورتر بشه خداوند اون مؤمن متقی ولی اون مؤمن متقی را کرامت میده ولی کرامت برای نجاتش کرامت برای یسرتش نه برای اینکه که اون کرامتش را در میزان معجزه قرار بدین مساوی و موازی معجزه قرار بدیم بعضی یا شعن اولیه را بارا از حتی از درجه نبوت هم بالاتر میبرند از درجه پیانبری هم بالاتر میبرن اونقدر که از ولی میترسن اون از ولی میاد از خدا نمیترسن هر حرام مرتکب میشه ولی اگر کنار زیارت اومد یا از کنار از رد شد نکنه اون زیارت اگر اسم او یا اون یا ولی رو بدی اوردی نما امشب خدا تو رو میگیره فلان میشه یا اون ولی تو رو میگیره اون نمیدونه آه اون سیت تو رو میگیره فلان میشه اینطوری بر می شما در میشی هیچ اساسی هم نداره و شایدم هم قضیه رخ بده شیاطین با با, با همراهان خدا شاید اون شخصا مبتلا بکنن شاید شخصی مثلا یا مثلا کاری انجام بده بخواهن برو ازیت مثلا اون شخصی را بکنه که اهل جادو جنبله و اون کسی که جادوگر جنیان خودش را بپرسته که اون شخص آزار را ازیت ببینه و کذلک جعلن لکل نبی عدو شرقین الجن والانس الانس شرقین و انس دشمنان مومنین هم شاید دخوییکی بکنن دشمنان دین خدا که مومن اذیت بشه بعد میگه آیه دیگر رو اینجا یاد می‌کنه میگه یا من منكم عن ديني فسوف يأتي الله این آیه ربطی با آیه قبلی داره. کسی که مرتبط بشه خدا به قومی میره خدا را دوست خدا اونها رو دوست داره. نشانه دوست داشتن، خدا چیه؟ قل تحبون الله فاتبعوه. بعد خدا در دنبال همین آیه اینجا تو نسخه من نیست ولی خب اصل آیه هست. عزله علی المؤمنین کجا میان ذلیلن هیچ وقت و دشمنی با مؤمن نمی کنند بلکه با دشمنان دین خدا میجنگند مبارزه می کنند هم دست میشن برای مبارزه با کسانی که دشمن دین خدا الان شما نگاه بکنید برعکس شده از این اگر گفتی این توحیده این اخلاص در, در توحید اخلاص در عبادت این شرک پرند دست یکی میشه با دشمنان دین خداوند یا توطعه میکنه بر علیه چند تا دروغ هم پشت سر هم میکنه برای تخریب شخصیتت یا به هر نوع اذیت آزاری که از دستش بر بیاد خدا گذاشته مؤمنینی که خدا را دوست دارند اینکه بر کفار شدید باشد این بر مؤمنین شدیده میگه این شخص غیرت این میگه که خداوند یکتا رو پرستید چرا واشغشنی میکنید والا و ایتو بینون فهو قول الا ان اولیا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكان يتقون اولیای خدا اونایی که دوشار غماندو نمیشه اونا چیان بسشون؟ الذین آمن و کانوی اتقونایی که ایمان به خدا وردن و تقوی داشتن متقیم حلال و حرامشون میدونه اموال مردم به باطل نمیخوره اون جادوگر که بزد از و نمیدونم شطور ازت از, از, از میخواه که بیار برای ضد بکنه بیار مرگ بیار فلان بیار کول بیار اینقدر بیار این شخص دنیا دوست که دینشو فروخته به خاطر دنیا بدون که کاسه زیر نمکاسه هست بدون که این متقی نیست انبال مردم را به باطل داره میخوره اون شخص صاحب طریقتی که نشسته فقط به اسم ازکار داره رقص میکنه توی این مسجد و دهولو نمیدونم نمبل میزنه بدون که کاسه زیر نمکاسه هست علامت عالم حقیقی تهجده، علامت عالم حقیقی پایبندی به سنت، پایبندی به است. إن فارق بين مؤمن حقيقي كأولياء يقضى صباح كأولياء شيطان. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم أنه من هداة الخلق وحفاظ الشارع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول توجي رسيد بعد الظهولات التثبوف قلت أنه هدايات درجية هناك مثلا إشارة بشكل أهل أهل علم هدايات درجية إنك إنسان تابع الدين فيهم بسهل نماط الرهاب ومن تبعهم فليس منهم أجل كثيرا ومع ذلك نماط هؤلاء و لابد من ترک الجهاد، فمن من جهاد فریت من هم هرکسی، و بعد جهاد ترک کش، هرکسی جهاد مؤمن نیست، ولی نیست. فکر نکنید این محمد و ها این کازیرو، دیویس و 50 سال میگه خودش داره در میاره و یه چیزای از غیل میگه. بودن، این علمای سو بودن، انجام میدادن، و همچنان هم هست میگید. صد سال قبل در هند، اون غلام میرزا احمد قاضیانی. میگه اول دعای مهدویت نکرد بعد نگفت من عیسیام میگه بعد نگفت من پیامبرم چی گفت؟ حضرت رسول گفته خداون گفت خاتم النبین خاتمی اندیشتر این اندیشتر پیامبر اینه من اندیشتر پیامبرم به دست من شده. رسول خدا تا حالا گفته لا نبیون بعدی لا یعنی من پیامبر لا هستم من پیامبر بعد از پیامبر لا پیامبر لا نبی بعد از من است. حدیثه تحذير لا نبي يا او لا بعدی، لا نبیون منم من لا یا پیامبر الله عزیم، اتاعی پیامبری کرد اومد جهاد رو در هند لغو کرد انگلیز هم خوشحال مسلمانان داشتن می جنگیدن با انگلیز با استعمار، این شخص اومد گوی جهاد نیست کسی جهاد بکنه علیا نمیتونه بشه این, م... این زد دینه این زد علیا خداست این زد اسلامه بودن این اشخاص و همچنان هم هست کسانی که شریعت خداوندی رو لغو میکنن جهاد خایم تا قیام الساعت. جهاد بر پاس. شاید ولي ولي ده سالی بیس سالی مسلمان جهاد نرند ولی جهاد خواهد موت و روزی خواهد اومد که اروپا هم فتح خواهد شد چنان در احادیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیفرماید مسلمان جمع بیشن از حجاز از جدیرات العرب بلند بیشن میرن اول با همونتو که در حدیث روناد اعدو ستا بین یدی ساعة موتی ثم فتح بیت المقدسی ثم موتانی ثم ستصالحون الروم دیگه با روم صلح میکنی و تقاتلون عدو مشترک بینکم و یک دشمن مشترکتون با روم با غربيها صلح میکنید با دشمن مشترک خودتون میجنگی فیقدرون بعد بعد از اینکه شما پیروز میشید با اون دشمن مشترکتون میجنگی هنوز بحث یهود نیسا با یک دشمن کی هست الله اعلم آمریکا آسوری الله اعلم فقط اینه که با اروپایی ها روم میشه جنگ میشه مسلمان ها پیروز میشن بعد اونا صلیب بلند میکنن میگن صلیب پیروز شد مو یک مسلمانو بولم چه صلیب میکنم اونجا هست که مسلمان ها میگن ما پیروز شدیم جنگ میشه بین روم و بین مسلمان ها, مسلمان ها میرن به جنگ اروپا اروپا فرق میشه اونجا هست که صدا ذات میشه دجال بیرون اومده که دجال هنوز بیرون نیومده که بعد از اون دجال میاد این وعده‌های خداوند جهاد قائمت اون جهاد راحت قال ولا بد من ترك الايمان والتقوى فمن تعهد وَالتَّقْوَى فَلَيْسَ مِنْهُمْ منهم ولا دام كف الايمان والتقوى راهو بكوره حرام بخوره مشروب بخوره خیلی احل الترقات احل الترقات. خود ما مشروب خورن. از اهل طریقت اهل دستاشون بری افریقا میشه خودمون نیست ولی آفریقا من دیدم مشرب میخورن زنا میکنن لواط میکنن از سبز و گذاشتن و دورش خودم دیدم من شب ساعت شب توی سودان بودم رفتم به طرف جنوب سودان صدا میا. صدای میاد صدای میومد گفتم به دوستم صدای چیه گفت تو مسجد دارن ذک میگن گفتم میخوام ببینم رفتم توی مسجد دیدم که زن و مرد دست هم دیگه گرفتن گرفته نذرا میرخصند آتشی برپا کردن دور آتش دارن طواف میکردن بعد از اینکه دور آتش رو چرخیدن دیگه رفتم میرن دور قبر دور قبر دیگه تواف میکنن و بعد زار گفتن هزار میکنن با همون زار بازی هزار اینجا هم پیش خودمون هست توی جنوب بازی هزار میگن جن و هزار میکردن و اون شیقه طریقت میشد و هم تو خودت روو میگرد این جادو جنبلاها مشروب میخوردن آدی این خیالشون هم نیستو حرف مشروب هست زن و مرد با هم میزنن و میرسن و با اون تبل و با اون دف و با همه چیز اینا هست این اولیای شیطان با نه اولیای خداوند قال يا ربنا نسالك العفو والعافيه انك سمیتا. خدا ما رو معقب بکنه نه این ابتلاس إنسان بخدهش مغرور نجح، بيخضي أمم أفطروا منكم. الأسود قال الأسود سادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في كرب القرآن والسنة واتباع الآراء والأحوال المتفرقة المختلفة. يكشف هي على أساس الشبهة، ونشبهة الشيطان هي جزاش برئ تلك القرآن والسنة. شبهة برئ إن إنسان في رواه حابب شه حابب حاسب شه. هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المشاهد المطلق. القرآن فقط مشاهد مطلق متنى. وهو الموصوف بكذا وكذا شروط شامينة تكذا وفق بكونه، إن قد نبينا فلان بكونه، إن كتاب بشه كتاب بكونه، إن قد حفظ بكونه، إن قد نبي فلان بكونه، كل شروط ذا الشمراش. كينجا شروط قال أوصافا لعلها لا توجد ثمة في أبو بكر وعمر. يعني إن شروط الجناح وفترشات أبو بكر وعمر من إن شروط الجناح ذا الشدة. فإن لم يكن الإنسان كذلك، فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك. ولا إشكال فيه ومن طلب الهدى منهما فهو, فهو إما زنديق وإما مجلول مجنون لاجل صعوبة فهمها فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رأس هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشينهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرت من لم لا يؤمنون إنما تنذر من يتبع الذكر وخشيا الرحمن بالغيب وبشوف بمعفورة وأجر كريم ختام أيه كم يرى إنما تُنذر من يتبع الذكر وخشيا الرحمن تذكر إين صوباتها إين علوم بكثير نافذة لك هات کسی که از آخرت می ترسه کسی که از اذااب خدا می ترسه اما کسی که از اذاب خدا نمی تسه دنبال آخرتش نیست تو شب روز یگووش کوغوننی فده نداره. گوشاش گمپ. قلبش گمپه حق توش نمیره کآ روش تاثنا توث تاثیر نمیذاره. انما تونز رو منتاببع از ذك و خشرق وحمنبلغیم اون کسی که از خدا ترسسی ف ب شغ و به این کسی هست که باید بشارت بش بین ف شق و به کریم این هست خدا تکیی میش میکنه. این شووه شیطانی هست. اینه که ما نمیتونیم؟ ما عاجزی من قرآن حفظو کنیم ما عاجزی اینقدر حدیث حفظو کنیم ما عاجزی منقدر کتاب فقهی بکنیم بعد در نتیجه قرآن و سنتو ما نمیتونیم بفهمیم حالا چون قرآن و سنتو ما نمیتونیم بفهمیم باید مقلد باشیم باید مقلد باشیم غیر رو باید ترک کنیم تقلید کورکورانه بکنیم نفهم باشیم اصلا هیچ چیز از قرآن ما حق فهمیدنشام نداریم سوال وقتی که قرآن و ذالمشون اقیم را صحابه میفهمن نمیتهمیدن آخی رو میفهمنن ولی اون صوفی یا اون غلط صوفیه چی میگفتن؟ میگه که نماز، نگخواهم میگه که رکوع و سجده رو که مفوطه ای بخوننم. نماز یعنی به یاد خدا بودن، خب انسان دহল میزنه، عود میزنه، یاد خدا میوخته. فرقی نداره ابلیسینم هم رو میگه. ابن سینا تا جون میرسه مثلا تو بحث معاد میگه معاد که وجود نداره، خیالات خواب. مثلا خواب میره چطور پریشام میشه و نگران میشه؟ جهنم خدا و بهشت خدا نمیتوری، هم خواب و خیال، انسان که مرده دیگه زنده نمیشه. بخاطر همین غزالی که خودش متکلمه غزالی ابو حامد غزالی صاحب کتاب مستسخم در کتاب اعترافات چیز میگه؟ میگه من کفر ابن سینا و از سوش ثابت می کنم یک وجهش همین این کار معاد خب ابن سینا میگه من باطنی بودم خودش میگه از شیعه اسماعیلی غلاط بود دیگه از باطنی ها بود یعنی های بد داشتن میگه قرآن ظاهر شما نخونید قرآن بد داره خدا برات میگه ولی تقریبا زنا چی میگه میگه تقریبا زنا نیک زنا نکنید از زنا اسم یک صحابی بوده داد من بیام برای نزدیک اون صحابی نشید نزدیک او بقره عمارتی زنا او بقره ولی تقریبا فواح فواحشیه او عمارت جدا نرمیم تو کتابها اصلا نه ظاهر کتاب اسم علی باتی نی کن نوشته رسولشون میگن کتابشون تو کتاباتشون هم فکر نکردی نیست تو هن کش بزرگی از بخاره اون کلاه سفیدی که بقول معروف نخوی طلای داره شاید رفتی رفتی اشاره خلیج زیادن توی امارات زیاده توی هند زیاده توی بمبئی استوجار خیلی موتوریشون بوهر معروف بوهر ماریه ای کاوجر بوهر تو چورا میکنن به اون شیخشون شیخشون میاد هفته یک روز نماز میکنن فقط یکشنبه حتی شیعه جعفری هم اونها رو تکفیر میکنن میگن اینا کافرن اینا اینا بدینه این چرا چون نیا نبوت محمد قبول ندارن اینا اعتقاد دارن حاکم به الله خداست اعتقاد دارن شیخشون خداست خدایی که بالای آسمونه که منزه هست خلق و مخلوقات باشه وجود نداره میگه شیخمون من خدا. خدا در اینا حل شده منظور حلات چیه خدا در من حل شد این کسی که ببینه خود خداست من حقم و خدا حق و من حق در من حل شده اینا اعتقاد این دارن که خدا درشون حل شده خدا هست خودشونه خودشه لاهو در ناسوت حل شده ناسوت خودشون جسد تمام حرفی که نصارا درباره عیسی که الوهوت خدای آسمانی روحانی در ناسود خدای جسمانی ایسا حل شد اون سه تا که بهش میگازن سه تا شخصیت متفاوت خدا روح خدایی در روح عیسی حل شد. ایسا شد خدا خدا تفکرشو میکنه نصارا با این حرف کافر شدن اینا چی لقد کفر الذين قالوا ان الله ثلاثه اونها پیامبر خدا رو خدا کرده اینا رو میگن خدا خدا درش حل شده چون خدا درش حل شده دیگه دیگه میتونه شر را بر شما حلال بکنه حرام خدا را حلال بکنه موسیقی و نمیدونم مشروب و زنا و لواط و هر چیز قصیب بتوان برده حلال بکنه تحلیل و تحریم دیگه دستیم شایخی که خدا داره حل شده این کفره این کفره و این کفر چه وقت پیش میاد وقتی که در علم و تعلیم و فهم قرآن گرفته بشه افلا تدبرون القرآن معالق لوب اقفالها نمیخواد که قلبشون فلوم جدی قرآن برای فهمش یاد تبر و آیاته لتبینه لنان برای تابینه، برای عمله، برای اینکه تو متهاجود بخونی، بشه عمل بکنی، نزدیک حرام نشی، عیار کوفلات قربو الزنا، نه اینکه زناو تعلقانه کنی، بلکه نزدیک وسایل زنا، نبناها حرام حرف اتفاق نگاه آنها حرام نکنی، این العین تزی و زناها نظر، و این سمع تزی و زناها سمع، نکنی، اینها نزدیک شدن به زنا، نکن، از همون عبار ریشه و بود، درش و ببند، باز نکن، نزدیک زنا نشو. نکه تنها زنا نکنند. نزدیکی جام نیست. کل راه ها را خدا برات باز. بعد میام میگن که نه زنا اسم شخصی بوده. کمی تحریف نوسف. یحربون الکلم. همون کاری یهود میکنند. کلام خدا را تحریف میکنند. اینها تحریف هم بوده اینها هست که خشدار میده. انجام حافظها و خب روحایی که مثل قادیانی ها که معروف هم برای احمدیه تو کانال برای خداست کانال به زبان اردو و عربی. بهایه هم همینطور بهایه که در این قرار اومدن همینطور حرفا رو زدن بهایه هم در روزه رو لفت کردن یک روزه جدیدی اووردن گفتن سال 19 ماه هر, هر ماهی 19 روزه نمیدونم انسان میتونه 19 تا زن بگیره نمیدونم سن ازدواج 11 ساله 19 تا زن هم میتونه بگیری 11 سالی که هم میتونه زن بگیری نمیدونم احکامی که تکالیفی که اووردن نماز رو حد کردن عوضش کردن روزه رو تبدیل رو عوضش کردن بودن در ایران میگه نبودن بودن آقا خانی ها ها بابی ها همه اینها داشتیم. اینها هم که به قول معروف مانع علم بودن مانع اتباع از قرآن و سنت بودن اینهایی که ادعا می قرآن بد داره قرآن بد نداره اون کسی که میگه قرآن بد داره اون شخص ملشده زندگی هست بر عکسسش اینا چیکار میکنن؟ اینها اگر کسی گفت که بیاد به قرآن بر بگردید به قرآن ب بهش میگن زندگی و بهش میگن دیبونه اینو نگاه بکن ظاهرنگره خشریه فقط ظاهرم گرفتن مشت صلافی تندرو ظاهرنگ کشوری فقط همین ظاهر رو گرفتن هیچ از باطن نمیدونن. اینها عمق نگر نیستن اینا نمیدونن دنبال فهم. معانی حکیمانه خدا نیستم شما ظاهر و رها کردید دنبال باطنید از باطن میخواد بیرون بیارید این نمیدونم باطن چیه؟ باطن نمیگه نگاه بکن کلمه از صلا از صلا. کلمه الف و لامش که اضافه است صلا خودش صلا چند تا حرف چهار تا حرف میدونی این چار تا حرف دلائد بر چی میده؟ یک حرفش صاده یک حرفش لامه، یک حرفش الفه، یک حرفش دا هست میدونی این چهار تا میده؟ اول بیعت میگره همیتوری بد نمیگی این صلا رمزه توش رمزه این رمز همیتوری بد نمیگم خب بیعت داد بعد میاد میگه اول نکن من همینطوری هم بیعت دادی سب کن هنیک مرحله داره بیا اول با من مسجد نماز بخون تهجد بخون این پله ها هست حتی غزلی هم میاره پله هایی که اینها تئ میکنن با شعر بیا نماز بخون تهجد بخون تهجد که خون اهل عبادات بدش میگن که برو فلانکار بکن فلان بکن بعد از این دیگر را میاد مرحله خب حالا میدونی این رمز این رمز چهارتا حرفی که ول گفتم ساد و لام و و تا چیه همه مشتاقی بفهمینن. رمز چهارتا رمز ساد دلالت بر سوم صاد دلالت بر سوم صلاحت و سوم هست سوم سوم هستید صوم چیه؟ اون دیگه رامز دیگه‌ست. اگه می‌خوای این رمز پیربری اول با ص و م همین صر شده داره. همینطوری که بذاست چه بیاید. اینها ان شاء الله تو کتاب اسماعیلایه، ان شاء الله تعالی ظهیر، اونجا مفصل میشه. از این بقر معروف بازی و نمیدونم. از این حرفایی که بی اساس و چرند و سفربتی را خدا مکلفمون کرده که بفهمیم صوم صد تا حرفه، صلات صد خدا یعنی از ما خواسته پیامبر قراتمون بفهمیم صلاه یعنی چوتا حد؟ سومین این از ما هست. این از که ایسان باید خوشیار باشه، بیدار باشه و شکر خدا بکنه بر اون نعمتی که بهش داده. کل نعمت اول توحید، دوم اجتماع بر صلّات، سوم بقول مربّع وظیفه‌ی خودمون مر در مقابل حکام دونستان چهارم اهل علم را شناختن، پنجم در و عبادی شیطان را شناختن، ششم ارض علم دون استان این شیش تا عقلی که قصادی که در جامعه است اشکالاتی که در ما هست اون ضعفاتی که در ما هست بین این شیش تا برمیگرده این شیش تا را اصلاح بکنیم سبحانك اللهم وبحمدك اخر هو الحمد لله رب العالمين وصلی الله علی سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم التسلیما كثيرا الى يوم الدين